بسم الله الرحمن الرحیم و بهیم نستاین انه خیر و ناصر و موین الهی لا تک ایلا انفسانا ترفتعین ان عبدا و السلات و السلام علی خاتم الانبیای و المرسلین حبیب قلوب العالمین ابل قاسم المصطفى و محمد خب خرسندیم از اینکه که در خدمت دوستان ارجمند هستیم در قالب نشست علمی با موضوع ظرفیت روایات برای بازسازی تاریخ فرهنگی خاندان های صدر اسلام این نشست از جمله سلسل نشست های تاریخ و روایات هست که به همت مرکز هوزوی پجرش های تاریخ اسلام برگزار میشه و در واقع نشست های متعدید پیش از این برگزار شده در این راستا و این موضوع البته این نشست اختصاص به تاریخ فرنگی خاندان‌های شیعه داره در ابتدا شایسته است که تقدیر کنم از این مؤسسه و تلاش و احتمام ویژه حضرت آیت الله یوسفی قروی به موضوع تاریخ اسلام و البته نقش و ظرفیاتی که روایات در ها و مطالعات تاریخی دارند و همچنین از جناب استاد ارجمند جناب دکتر داداش هم تشکر کنم که ارائه موضوع رو فرمودن من در ابتدا یک معرفی اجمالی از جناب استاد خواهم داشت حاشان که ایشون مشهور هستند هر دانش‌پژوهی در حوزه تاریخ با آثار و برکات علمی ایشون از برکات آثار علمی بهره بودند و چهره شناخته شده هستند ای و خیلی از دوستانی که الان آن های مختلف حوزه پژوهش‌های تاریخی فعال هستند افتخار شاگردی جناب دکتر رو داشتند جناب دکتر متولد سال 1345 در تهران هستند و هم هم دانشیار پژوهشگاه حوزه دانشگاه سال 1362 وارد حوزه شدند و پس از دروس مقدمات و سطح در سطح مرتبه درس خارج از در صاحب الله مکارم شیرازی و الله تبریزی بهره بودند سال 1383 هم در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند و سال 1388 هم در مقطع دکتری تاریخ اسلام از دانشگاه اصفهان عنوان رساله دکتری دکتر بررسی و تحلیل تاریخ نگاری اهل سنت در موضوع زندگانی 12 امام از قرن ششم تا پایان قرن دهم ده بوده من های علمی و آثار علمیشون زیاد هست ولی اون بخشایی که تا حدود مرتبط با موضوع بحث ما میشه رو فقط گزینش کردم خب یشون مدیر گروه تاریخ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی بودند مدیر گروه تاریخ در پژوهشگاه و دانشگاه بودند حضر پیوسته شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه معارف و پژوهشگاه و دانشگاه بودند رئیس پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه و دانشگاه بودند و مدیر مدیر گروه تخصصی تاریخ نگاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام آثاری که ایشون در قالب کتاب داشتن سیر نویسان و قرآن هست حالی این ها رو از این حیث من میگم که میخوام بگم نگاه ایشون در مطالعات و پجوش های تاریخی محدود و منحصر به منابع تاریخی، کلاسیک تاریخی نبوده. سیره نویسان و قرآن، منابع تاریخ تشعیو، تاریخ تشعیو که معروف تاریخ دو دوجلی و پجوشگاه دانشگاه که البته تعلیف گروهی بوده و جامعه دکتر هم یکی از مؤلفین بودن، دانشنامه سیره نبوی، نقد و بررسی منابع سیره نبوی، تجوهشی در سیره نبوی و تاریخ عرب در دوران اسلامی دو کتاب در واقع وی هست که خیلی به بحثم ما مرتبط میشه یکی بحث کتاب خاندانهای علمی شیعه هست با تحکید بر خاندان ابو رافع که سال 1396 هم شایسته تقدیر شناخته شد این کتاب و کتاب بعدی سیمای دوازده امام در میراث مکتوب اهل سنت که در سال 1396 به کتاب سال حوزه معرفی شد خب این دو کتاب بسیار نزدیک هستند با موضوع بحث ما و ان الله امروز بتونیم این موضوع رو حداقل تبیین خوبی اتفاق بیفته و سرمنشه‌ای باشه برای سوژه‌های پژوهشی سروران و دوستانی که جلسه رو دنبال میکنن من نمیدارم طبق عرف معمول یک زمانی رو قابل توجهی رو حالا بین نیم ساعت تا چه دقیقه رو به ارائه اختصاص میدن و 20 دقیقه پایانی هم برای سوالاتی که ممکنه دوستانی که به صورت مجازی مرتبط هستن یا دوستانی که در خدمتشون در جلسه اگر سوالی مطرح کنند رو پاسور از جناب دکتر دریافت خواهیم کرد در ابتدا خب اون زمان رو دخلیت های دکتر هستیم و انشاءالله در پایان هم اگر سوال و توضیح بیشتر نیاز بود رو مطرح خواهی با دکتر دخلیت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الله علی سیدنا محمد و علی تاهرین دیام سوگواری آقای ماموسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم خدمت عزیزان حاضره در جلسه و دوستانی که در فضای مجازی جلسه رو دنبال میکنن همچنین دیروز سال روز در گذشت استاد پیشوایی بودن از مورخان شناخته شده در عرصه تاریخ اسلام که این تسلیت عرض میکنم الوقت در حوزشتشون رو و تشکر میکنم از این موسسه محترم مرکز حوزوی پجارش های تاریخ اسلام و همچنین از دوست و همکار عزیزم جناب دکتر قرارتی و عزیزان حاضر در جلسه خب عنوان این نشست است عنوان ظرفیت روایات روایات برای بازسازی تاریخ فرهنگی خاندانهای شیعه صدر اسلام و اینکه این عنوان رو من پیشنهاد دادم و گمون میکنم آقای دکتر الویری هم هم از تشکر میکنم که این جلسات رو به نحوی در تنظیمش دخیل هستن و همچنین آقای ناصر موسوی که پیگیر بودن از تشکر میکنم خب من چند تا کار راجع به خاندان های شیعه صدر اسلام انجام دادم یعنی سه تا کار انجام دادم یک کار منتشر شد به عنوان اینو عنوان کلانتر اینه خاندان های شیعه صدر اسلام نخستین خاندان خاندان ابو رافع بود که به صورت کتاب چاپ شد دومیش خاندان میسمی که در واقع در ویرایش نهایی میشه و یک خاندانی به نام خاندان جفر ابن عبی طالب این دوتای اخیر در حال ویرایشه و انشاءالله به زودی منتشر بشه خب آقای دکتر الویری یه دقدقی داشتن که باره هم بهش پرداختن اینکه ما از روایت بهری تو تاریخ نگاری و تاریخ نیویسی میتونیم ببریم یه دو جلسه پیش از این تشکیلی شده و کلیات و مباعث نظریش رو ترک کردن حالا توی این کار من به صورت مثلاقی در واقع وارد میشم و تلاش میکنم بگم این طرحی که من داشتم یعنی ترح خاندانهای شیعی صدر اسلام در واقع چه بخشایش رو کتابهای روایی مثل مثلا کافی یا کتابهای صدوق میتونه پوشش بده و با تکی بر اونها این کتاب این مثلا سجلی که دارم و جللای دیگه که هست این رو میتونه پوشش بده و کمک بکنه پیش از اینکه وارد بشم و یعنی اصل بحث رو بخوام بپردازم چند تا نکته رو عرض میکنم این عنوان روایتی که اومده ظرفیت روایات خب یه موقع روایات رو اون چیزی که ما ازش تلقی داریم همین هست که کتابهایی که بلاز ادبی ژانر خاصی دارن و حاوی سخن و فعل و تغریر معصوم هستن این کتابهای روایی هستن در آقا یه فرم ادبی هست در برابر فرمای دیگه مثلا ما کتاب های تاریخی داریم کتاب های تراجم داریم کتاب های فقر داریم یه فرمی از این نگارش هم کتاب های روایی و حدیثی هست که این شکله یعنی به لازم ساختار ساختار خاصی داره که در واقع مطالب با سند میاد و بعدش هم یک محتوی پشت سر این سند میاد و به لازم هم در واقع شامل <تص> روای سخن و رفتار معصوم اهل بیت هست. خب بلاظ ادبی یعنی تو بحث های زبان و ادبی روایت رو به نحو خاص دیگه ای تعریف میکنن. میتونه همپوشان باشه با این چیزی که ما دنبالش هستیم. البته یه ذره عام، یه ذر خواستر تعریف میکنن. یه تو بحث های روایت شناسی که تو مباحث ادبی مطرح میشه روایت رو اینطوری میگن بازنمایی یک رخداد یا مجموعه ها. یعنی یه رخدادی باید باشه وجود داشته باشه و یک نفر یک گروهی یا گفتمانی بیاد اون رخداد رو در واقع بازنمایی بکنه این بهش میگن روایت حالا ممکنه این روایت به صورت گفتار باشه نوشتار باشه عکس باشه فیلم باشه سینما باشه عام این اون چیزی که تو ادبیات میگن به صورت عام همه این رو بهش میگن روایت که حالا این روایت مثلا بعضیا میگن که حتما باید توالی توش باشه یعنی زنجیره الی درش باشه وقتی شما مثلا ای رو به کار میبرید که فلان اتفاق افتاد پس چنین شد این در واقع توالی هستش یعنی الیت هستش این بهش میگن روایت و گفتمان روایی که تو اینجا به کار میبرن به معنی شیوه بازنمای رخداد ها هست یعنی اون ای که ما رخدادی که رویدادی که اتفاق افتاده ای که ما میخواییم اون رخداد رو مجدد بکنیم بازنمایی بکنیم میشه گفتار روایی خب حالا ما بیشتر این چیزی که اینجا داریم میگیم در واقع تو این عنوانی که داریم عنوان نشست روایات خب اون روایت اصطلاحی که ما باش مانوس هستیم بیشتر به اون معنا داریم به کار میبریم یعنی کتاب هایی که به لحاظ شکل و ساختار یه نهوه خاصی هستند در سند هستند با سلسله اسناد مطلوب بیان میکنن و به لحاظ محتوا هم شامل در واقع سخن و فعل و تقریر معصوم هستن نید این یک نکته هست که حالا این کتاب ها خوب انواع اق داره مثلا فرض بفرماید عمالی ها یه بخشش هست احتمالا مناقب نگاری ها یه بخششه، بخشش بخششه، های بخشش یا مصنف بخشش خب دامنش وسیعه که معمولا با همین ساختار مطالب رو ارائه کردن. اون نوشته های صدر اسلام معمولا تو همین قالب، یعنی معمولاً به همین قالب و به همین ساختار ارائه شده. این یه نکته نکته دوم بحث تفاوت کتاب های تاریخی و حدیثیه خب ما الان دو نوع یا حالا به اسطلاح دو جانر داریم دو نوع ادبیات نوشتاری داریم که یه بخشش رو یه تیفش رو میگیم کتاب های تاریخی یه تیفش رو میگیم کتاب های روایی یا حدیثی خب اینا ممکنه به هم نزدیک بشن توی یه جایی یعنی مثلا تبری اجمالا مشش معش بلاز شکل و صورت حدیثیه هرچند به محتوا خوب خ حدیث نیست. اینا این دو تا طیف یعنی تفاوت هاشون اون چیزی که و بارز هست که تو محتوا هست یعنی ما تو متون حدیثسی وقای و رخداد ها یک حقیقت محض تاریخی نیستند. یعنی محدث اصلا دنبال یک حقیقت محض تاریخی نیست قاعدتا ایشون یعنی محدث دنبال مطلب دیگه ایه یعنی حالا تو کتاب حدیثی ما میتونیم بگیم که وقایه تاریخی به صورت آرمانی مطرح میشند یعنی صورت آرمانی به خودشون میگیره تو کتاب و اگر وارد یه مبحث تاریخی هم میشن انسجام رو ندارن یعنی ما فرض مییم کتاب بخاری مثلا یه با یک عنوانی داره به نام بدر یه عنوانی داره به نام کتاب المقازی کتاب های حدیثی احل سنت ما کتابی داره به نام کتاب المقازی خب کتاب المقازی ها اصلا دنباله ای نیستن که مثلا بیا قضاوات پیانبر رو بگه نقطه اولیش اینجا بود به اینجا منتهی شد اصلا دنباله نیست یعنی اصلا یعنی هدف اینها به لازم دنبالی نیستن که یه حادثه تاریخی رو بخوان بیان بکنن هدفی که در این کتاب ها دنبال میشه که موجب تفاوت کتاب های حدیثی و تاریخی میشه اینه که ما تو کتاب های حدیثی در واقع اون محدث بیشتر دنبال مباحث عقیدتی و فقهیه و اگر هم ورود میکنه به مباحث تاریخی بیشتر نظرش به این،, این هست که شایستگی و فضایل افراد رو به نحوی پیگیری بکنه به حالا توی کتاب های حدیثی اهل این واضحتره به نظرم یعنی کتاب هایی که الان ما این حدیثی بایش سراغ داریم مثلا کتاب مناقبی که دارن یا کتاب فضایلی که دارن در واقع هدف اینها از این کتاب هایی که تدوین کردن مثلا فرض کن راجع به یا مثلا راجع به عنوان بدر دارن عنوانه که تو کتاب های تاریخی به اصطلا سیر هم بحث میشه کتاب های سیره که نزدیک تاریخ هست وقتی میاد تو کتاب های حدیث که سنت هست عنوان یکیه ولی در واقع هدف نویسنده متفاوته یعنی تو کتاب های تاریخی بحث در واقع بحث حقیقت تاریخی هست ولی تو کتاب های حدیثی بحث رفع ابهام از یاران و صحابه پیامبره در واقع اینا که ورود میکنن فرض بفرمون تو جنگ بدر مهم این هست که نشون بدن فلان فرد که از صحابه پیامبر هست در واقع چه ویژگی ها و فضایلی داره و این فرد در واقع که به عنوان یه فرد مطرح هست این کسی هست که دارای شایستگی و فضایل است و قایدتا به انحراف نرفته یعنی پشت ذهنشون اینه تو کتاب حدیثی برخلاف کتاب های تاریخی بنابراین این یک تفاوتی هست که ما چون تو عنوان در ظرفیت روایت برای, برای, برای باسازی تاریخ هست من این دوتا در واقع نکته رو خواستم ارز بکنم ارز کردم که این نکته سومی هم که میخوام بگم این هست که ما کتابهای تاریخی الا رقمین که بعضی‌هاشون کتاب‌های حدیثی الا رقمین که بعضی هاشون عنوان های تاریخی دارن ولی خب به هیچ عنوان اون حادثه رو به صورت کامل پوشش نمیدن چون اصلا هدفشون هم این نیست یعنی هدف بخاری وقتی یه عنوانی داره مثلا راجع مغازی یا کتاب مصنف عبدالرزاق داره یا ابن عبی شیبه داره راجع به این اصلا دنبال این نیستن که مثل ابن یا مثل مثلا واقعیدی بخوان این حادثه رو بلازه تاریخی توضیح بدن اصلا به شما دنباله دنبالی نیستن و هدف دیگه ای رو دنبال میکنن خب ما تو عنوان این نشست خاندان های صدر اسلام رو داشتیم که این رو هم بعد نسید وزی مختصر بدم خاندان های شیعی صدر اسلام خب ما خاندان هامون دو دستن به صورت کلی. بعضی حکومتگرند خاندان های حکومتگر که آقای زنبابر یک کتاب نوشت... کتابی نوشته منوان سلسله های اسلامی و خاندانهای حکومتگر اگر اشتباه نکنه عنوانش رو مجمع خاندانهای حکومتگر رو نوشته مثلا عباسیان و مویان اینه که حکومتگر نلاشته در شرق در غرب خب اونا یه تیف خاندان هستن ولی من تو اون طریق داشتم دنبال خاندانهای حکومتگر نبودم دنبال خاندانهایی بودم که در واقع تو عرصه فرهنگ ورود کردند، تو عرصه سیاست در واقع شاخص نبودند. مثلا خانواده میسم خود میسم بله ورود کرده و شهیدم شده به عنوان یه مبارز میسم به عنوان یه انقلابی شناخته میشه ولی فرزندانشون اومدن در واقع توی گسترش تشیید نقل روایات نقشیفا کردن تو کلام شیعه نقشیفا کردن مثلا فرزندان اوبیدالله فرزندان ابو رافه بیشتر تو جهت نگارش ورود کردن مثلا اوبیدالله یه فردیه که کتاب تصمیه رو نوشته یا مثلا القضایه رو نوشته یعنی تو عرصه فرهنگی ورود کردن سعی کردن که اون چیزی که از امام علی بهشون رسیده یا از این رسیده به نسل بعد منتقل بکنه این خاندان ها که بوده 20 خاندان تقریبا شاید بتونیم شناسایی بکنیم مثلا خاندان زراره خاندان مثلا جعفر خان همین خاندان گفتم داریم یه تعدادی داریم که حالا تون تره من نوشتم شاید 27 خاندان باشه در واقع این خاندان ها <تص> شاید بگیم اینا اساس فعالیت های صدر اسلام با تکه بر این خاندان ها بوده یعنی ما الان دسته های سیاسی که الان مثلا تو جامعه امروز شناسایی میکنیم حالا شاید بشه بگیم حزب تو اون دوره این مباحث بر اساس خاندان پیش میرفته یعنی خاندان ها بودن که این دسته ها بودن که در واقع یک باری رو حمل میکردن و به صورت در واقع نسلندر نسل یک مفهومی رو پیش بردن ما در واقع توی این تر تلاش کردیم این سلسله رو نشون بدیم یعنی بگیم که فرض بفرمید اگر این خاندان پای گذارش میسن بوده به کی رسیده و چطوری منتشر شده و هر کدوم چه آوردهی داشته و این مسیر رو به چه صورت اینها پیمودند خاندان هایی که یعنی بیشت تو سیاست نبودند تو عرصه های فرهنگی ورود کردند و اکثرشون هم اینا کسانه بودند که ارتباط نزدیک با اهل بیت داشتن مثلا به ابن عبیراف کاتب امام علیه یعنی الان نامه های امام علیه همش توقیات یعنی توقیش به دست اوبیدالله هست یعنی این چیزایی که الان تو تبری هست جاهای دیگه هم هست اوبیدالله در واقع نامه ها رو می نوشته و امزای اوبیدالله هست و این خانواده معمولاً معمولا مشاهدات شخصی خودشون رو از عیمه گزارش کردند یعنی داریم مثلا فرض که از خانواده‌ی جعفر به نام ابو حاشم جعفری اصلا تعابیرش یه طوری که با اون سه امام آخر یه چهار امام آخر رو این که رفقای همام و گلستان بودن یعنی مثلا یه سلیت و مثلا تقدهیت و معهو کنتو اندهو سی تا شاید ردیف هم اینطوری با کنتو یعنی به صورت سیقهی متکلم وحده میاره که مثلا با امام بوده نشون میده که خیلی نزدیک به امام بوده و یعنی کاملا با امام رفت آمد داشته و اون چیزایی که داریم میگه مشاهدات شخصیش هست اون چیزی که من حالا به صورت کلی الان عرض می کنم از این ستا خانواده به خانواده عبور رافع و خانواده میسم از مجموع روایشتشون استنباط می کنم و گردآوری کردم این هست که امام علی برای اینا خیلی مهم بوده یعنی حمتشون این بوده که فضایل امام علی رو در واقع منتقل بکنند و اجمالا در برابر اومویان که به نهوی تلاش میکردن امام علی رو به کنار بزنند اینا در برابر اون گفتمان قد علم کردند و تلاش کردند که فضایل امام علی رو در واقع ویژگی امام علی رو منتشر بکنند یعنی مهمترین کاری که کردن دست کم تو صدر یعنی تو اون کسانی که تو دوره اول بودند، تا سال مثلا تا دوره اومویان تا نیمه های قرن دوم در واقع نیمه اول قرن دوم معمولا روایتی که دارن تکیش امام علی و مناغب و فضایلیشونه که نشون میده در واقعی خطی که مقابل امام علی بوده اینا تلاش کردم مقابل اون خط گفتمان خودشون رو پیش ببرن خب سومین و که در عنوان از بحث تاریخ فرهنگی من تاریخ فرهنگی اصطلاحی رو مد نظرم نیست اون چیزی که توی این خانواده ها تلاش کردم از دل روایت بیرون بکشم این بود که ببینم اینا در انتقال حدیث و معرف احلی چه نقشی داشتن یعنی در گسترش و حفظ تشیع و انتقال حدیث و معارف اهل بیت چه نقشی داشتن یکی این ماده نظرم بوده و بعضی از طریق هم که هست یعنی طرق روایی مثلا فرض کن طریق الله ابو رافع رو گفتن که معتبرترین تریق طریق دستیابی به سخنان امام علی هست یعنی طریق اوبیدالله الله عبید ابو رافع امام علی این مثلا خاندان ابو رافع یعنی بالاخره یک طریق معتبری هست که اهل سنت هم مثلا به این طریق اعتبار قائل هستند. و نکته دوم این بوده که تو این تاریخ فرهنگی اینه که اینا چه کتابهایی تدوین کردن چون میدونید که تو خب دستگیم تا نیمه قرن اول کتاب به این معنی که الان ما میگیم مدون نبوده دفترهای حدیثی بوده و اینا معمولا دفترهای حدیثی داشتن مثلا میسم اجمالاً میتونیم بگیم یه دفتر حدیثی داشته که از امام علی سخنانی که شنیده بوده رو نوشته و بچهاش میگن که ما در واقع کتاب میسم داریم نقل میکنیم یعنی, یعنی فرزندان میسم میگن که میسم کتابی داشته ما از کتاب میسم داریم نقل میکنیم و اویدالله نبی عبی هم همینطوری یعنی اینا در واقع یک دفترهایی داشتن که نوشتن یعنی سخن مثلا امامالی این رو فرمود و این اومده تو دست فرزه یعنی خاندانی شده تو خاندان این گشته و هی بست پیدا کرده مفسود شده توسعه پیدا کرده نهایتاً شده یک کتاب یعنی تو قامت کتاب در اومده در واقع این دفترهای حدیثی تو این خاندان ها تقویت شده و تکمیل شده و در... یعنی تو نسلهای بعدی مثلا وقتی میگم قضایا یک کتابی هست که برای از ابو رافه هست خب این به مرور اضافه شده شده مثلا فرض بفرمیم کتابی به نام قضایا برای ابو رافه خب این نکات ابتدایی منای دکتر قرائتی. میخوایید به وسطش چیزی بفرمید شما و بعد من وارد دومین بخش صحبت هم بشم ندازم امکان دسترسی من به نظرات دوستان مجازی چجوریه دسترسی ندارم هیچی خوبی نیست کسی سوال داشته باشه کس خب دوستانی که از هستن سال سوال خواستند اگر بله بله بله بله سوال بله بله به برای خود شخص من داره بله رو توضیح دادید یکی عبارت خاندان های شیعی است که این خاندان که می اگر فرض بفرمانی پیدستگی درش نماشه نیسم هست بکشش مثلا هیچی داری نقد کرده درش دو قرن گذشته بعدا از نسل اول یه کسی پیدا شده این هم داخل این خاندان به حساب میاد یا اینکه این پیوستگی می باید صورت گرفته باشه و باید یه بازی جمالی مشخصی میداد مثل و هاشم دیگه. ابا هاشم. در مورد آبا که گزارش زیادی نداریم. خود جعفر هست. بعدش ابا هاشم. نه. مشخصا تعریف خاندان های شیئی رو میخوام بدان که این بازش و چقدر هم تکمیلی چقدر به قوم. خواهی وقتی خاندان رو یه خاندان رو یه خاندان پدر و پسر و فرزندانش بدونیم یا یکی قبیه رو هم میتونیم داخل در یه خاندان بدیم. نه. حالا ببینید من خاندان رو بر اساس اون چیزی که تو کتابای های هست در اون تبار بزرگ این ریشه رو یعنی اون ریشه این خانواده رو که معمولا هم پیوسته است یعنی فرض بفرمایید میسم چند تا بچه داره اینو پرخش میشن و همینطوری استمرار پیدا میکنه ممکنه این وسط یه انقطاع کچگی باشه ولی معمولا مثلا میسامی که میگن مثلا تو روایات ما هست میسامی وقتی میگن میسمی انصرافش به این خانواده است. یعنی اصلا میسمی شده برای این خانواده. یعنی انصراف پیدا میکنه. یا مثلا وقتی میگن جعافره یا میگن جعفری. جعفری ها برمیگرده به اون کسی که ریشهشون شون جعفره ابن طالب. و معمولا هم که من تو این سقرن دیدم پیوستگی با هم دارن. یعنی چون اینا دو تا درواز شاخصه دارم یکی همین پیوسته که برمیگردن به اون نسل اول و دیگه این که با امرت ارتباط دارن در واقع دو شاخه میشن اینها ببینید این خاندانها اکثریتشون این ستایی که گفتم من اکثریتشون تو میان تو تیف درواز تو خط علوی ها و تو خط واقع امام علی و فرزندان امام علی و بعضی از اینا میرن کمن میرن تو خط مقابل یعنی مثلا ما تو فرزندان جعفر ابن ابی طالب داریم که برقیشون کاملا اون سمت مقابل عیم قرار گرفتند یعنی سمت اهل سنت یعنی بیشتر اصلا منابع حدیثی اهل سنت روایات اونها رو نقل میکنند تو منابعشی راه پیدا نکرده یعنی ما یه طیفی رو داریم از اینها که وقتی پیگیری بکنیم. بالاخره از کجا میخواییم اطلاعات اینها رو به دست بریم میبینیم تو بار اول منابع حدیثی اهل سنت اینها رو توصیق کردن و روایتون هم در اونها هست که داره بازخورد میگیره و اونها دارن نقر میکنن و تو منابعشی راه پیدا نکرده این دوتا خط رو ما می‌بینیم هرچند خط در واقع اهل بیتشون قوی تره ولی اون خط مقابل رو هم تو خاندان این خاندان هایی که گفتم ما شناسایی بکنیم ولی این چیزی که من تو این ستا خواندم دیدم اون در واقع اتصال برقرار هست هم اتصال برقرار است و اینکه پیوستگی و پیروی از اهل بیت رو ما توشون میتونیم پیگیری بکنیم و کاملا نشون بدیم توی بعد به مورد تعریف شیعی، شما شیعی کلامی، تعریف شیعی کلامی است مثلا فرض بفرمایید مثلا زهر هم میتونه تو تعریف شیعه باشه درنتیج ما اون واسه شیعه یه انتقادی خاصی هست که امسال مثلا میسان تنبا و مثلا اموا و امسال اینجوری در بر حال بده. در این ب, ب, ب خاصش نیست. در واقع ما حالا خاندان شیعی که میگیم گفتم ملاک اون اینه که بیشتر اینا پیرو بیت بیتن و تو دم دست اهل بیت هستن. کلامی نیست. کلامی نیست. نه. یعنی این سر با عام‌تر از اون کلام خاص نیست. اینا که حالا حتی ممکنه بعضی هاشون خودشون، نیوتون نسل اول خودشون همردیف امام هم ببینن یعنی همردیف امام ببینن و حتی ما بعضی داریم که امام از اون هم مثلا امام سجاد فرض بفرمه از عبدالله ابن جعفر روایت نقل میکنه امام سجاد از ابو رافی روایت نقل میکنه یعنی نشون میده که فرض بفرمایید که یا از فرزندان عبدالله ابن جعفر اینا خودشون رو هم ردیف امام سجاد میدیدن یا بعضیشون هم ردیف امام باقر میدیدن حتی جاهز وقتی تعریف میکنه این‌ها رو اینا رو هم ردیف هم میاره یعنی نشون میده که اون معنی خاص رو نداره که پیرووی محض باشه ولی تو دم و دست‌ها اینا بودن و در ازشون یا روایت میکردن یا در تعارض با اینها نبودن بیشتر این مد نظر من از خاندان هاشمی به عبارت اسلام هم واژه‌ی زبانی شده یعنی که صوره صدر سال اوله اوله که شما فرمودید از مثلا از مثلا این در این چه زمانی اسلام رو ما در واقع بازی حضور ائمه میگیریم تا عصر غیبت پایان اثر غیبت صغرا رو مد نظر ما بوده یعنی اینا که ارتباط به ائمه دارن و به نحوی تونسته چیزی رو از اینها منتقل میتونه باشه آره خاندان نوبختی هم میتونه داخل این ها بشه خب از سوال دوستون من دو تا محور رو میخواستم از اسطالی بخوام اگر فکر کنید مهم هست توضیح بدیدی که این بحث فقط در خاندان های شیعی به معنای امامیه قابل پیگیری هست که در سایر مذاهب شیعه هم مثل زهیدی و اسمایلی هم این خاندان ها وجود داشتن خاندان هایی که میراث عمه خودشون رو منزبث بکنن مکتوب بکنن نش بدن شما توی حوزه نمیدونم لزوما پنج داشتید ولی وقتی که کارکدا یا همچین خاندان لقی هم تو بقیه مذاهب می‌بینید دیدید ببینید ما ارتباط خاندانی رو اینجا داریم می‌بینیم یعنی یکی از کارهایی که کردم من به ویژه با توجه به اسناد اینه که در واقع چه کسانی دارن از این خاندان ها نقل می‌کنن مثلا خاندان هایی که گرایش زیدی دارن رو من می‌بینم که از خاندان مثلا خاندان ابو رافع نقل میکنن حتی کتاب های ابو رافع رو و خاندان اینها رو بیشتر زیدیا دارن نقل میکنن و حتی توی یه جایی امامیه اسنادی که داره از طریق زیدیه نقل میشه رو نمیپذیرن و با اسنادی نقل میکنن که به امام صادق برسه یعنی داریم من من حالا خیلی ورود نکردم به اونها خاندان هایی هستن مثل مثلا ارتباط اینها با خاندان زبحیجا کاملا مثلا تو خاندان جعفر کاملا پیداست یعنی با خاندان زبیر با خاندان عباسی ها کاملا میتونیم رگه رو ببینیم با زیدی ها میتونیم ببینیم اینها رو من با تو هم یعنی ارتباط این خاندان ها با خاندان های دیگه رو به نحوی تونستم نشون بدم این پیگیری کردم یعنی استداد شدن رو داره هم ارتباطشونو هم مقایسهش آره تو حالا شاید مثلا به این حجم که این خواندان که تو این تشکیلات احیمه بودن شاید اطلاع تو اینجاها ضعیفتر باشه. چون بلاخره اون خواندان ها ممکنه یه مقداری از نظر شیعیان مخدوش باشن و اسناد اونها کنار گذاشته شده بشه. درست. هم. من بحثم اعتبار اتصالشون به خواندانشین هم اصلا همین نگاهی که ما به خواندان توی انتقال میراسه حدیثی داریم توی امامیه توی بقیه فرق شیه هم همچنین چیزی قابل تصور هست همچنین خاندان های وجود داشتن هست چرا من... بوده یعنی تو فرق دیگه هم هست مثلا اطلاعشون انقدر هست که بشه مقایسه کرد میشه مثلا تو فتحی ها باشه مثلا تو زیدی ها هست تو زیدی ها مثلا یه چند نفر هستن که مالی خانوادن دارن نقل میکنن گزارش های مربوط و اهل بیت اینو حالا باید بیشتر پیگیری کرد مثلا تو قیرشیه هم مثلا زوبهیری خوب کار شده بره. خاندان زوبهیری کاملا کار شده روایتشون معلومه و به دوستوناشون معلومه میشه حالا من اینجا هم که ایشون هم فرمود خاندان شیعی به من یه خاصه شده من غیر آم دیدم خاندان رو اینجا خاندان رو الو که رو داشتن هم کشیده بشه بله حرفی نیست یعنی از این خاندان ها حالا بعد شناسایی بشه تعریف خاندان شیرا شما تعریف یه تعریف عام می‌گرفتید که این خاندان یعنی کسانی که ارتباط مهمی داشتن روایتی نقل کردن یا مثلا لوغو محبتی دوستنی به این معنا یعنی به این عامی که ظاپر نموند تعریفی که در کلام هست نه <تص> من دو تا حالا نکته سال سوال کردن عرض کردم یکی اینکه اقتصاد بین اون جد بالا و این فرزندان به نحوی برقرار میشه یعنی برقرار باشه یعنی قطع کامل نباشه یعنی وقتی ما میگیم میسمی به یه خاندان اصلا متضار یعنی شما بگید مثلا برید انصاب رو ببینید انصاب قرن هفته میگی آقا این انصاب مشهور سمانی. سمانی. سمانی اونجا مثلا میگه میسمی این خاندان هستن جعفری خاندان جعفری نوری حال اینا رو میگم حالا اگر مثلا یک دو نفر باشن رو اگر نتونیم نمیگیم ولی انقدرم گلا و گشاد نبوده که شام بفرمید یعنی محبت خاص خال یعنی فقط محبت نیست گفتم اینو تو دم دستگاه ائمه هستن ممتا شاید ایشون که میگه اعتقادی خب اعتقاد خیلی فرق داره مثلا معتقد فرض بفرمایید که به نسب باشم اینا یه میز ذره سخته جلوتر میایم ها جلوتر که میاییم آره تو وصول 150 سال اول یه ذره سخته یعنی اطلاعات ما کفایت نمیکنه. ولی جلوتر میایم کاملا می بینیم همون حرفهایی که تو کتابای مثلا بسایر رو درجه داشت کاملا دارن همون رو نقل میکنه یه چیزی هم هست شاید بشه گگم در مورد شخص صحبت کنیم اعتقاداتش قابل سنجش باشه اما در مورد خاندان که افراد دارای خب مراتب مختلف از ایمان یا اعتقاد باشن دیگه سخت میشه مثلا می خاندان اصلی میشی هستن تمام افرادش مثلا اون درجه از رو داشته مشن اخراز سخت بشه اگر دوستان سوال دیگه من بازم این محور دیگه یادداشت کردم نمیدونم البته خود بس مبنایی میشه چون که تو عنوان نشست تاریخ فرهنگی اومده حالا فراموش هست دلیل بیشتر تاریخ فرهنگ حالا اگر موضوع نقل حدیث و معارف رو یک مقوله فرهنگی بدونیم تاریخ فرهنگ میشه در واقع بررسی نقش این خاندان در کیت فرهنگی مثل حالا انتقال معارف باورها مذهب تقویت مذهب اما تاریخ فرهنگی یعنی خانش فرهنگی یعنی یک تفسیر فرهنگی از یک خاندان حالا شما این نگاه تاریخ فرهنگی یعنی خانش فرهنگی از این خاندان ها که مدنظرتون نظرتون چون فرمودید که مرادتون ده ده. نه نبوده یعنی من اون اصطلاح خاصی که نظر شما هست و کتاب هم نوشته شده راجب من منظورمون نبوده گفتم دوتا محور رو پیگیری کردم ای که این که تو عرصه نقل روایات چه نقشی داشتن دیگه این که در واقع کتاب هایی که تدوین کردن و اثرگزاریشون چی بوده یعنی تو مرحله تو تدوین در واقع کتاب این دوتا رو بیشتر پیگیری کردم سعی کردم باسازی بکنم یعنی دفترهای اینها رو تو قامت هستیشون بتونم شناسایی کنم و بازسازی بکنم این دو تا محور کلیه توی طبس. بحث فرهنگی بوده خب پس ما با اجازه شما باید تو عنوان یه تغییری بدیم که بگیم سهم و نقشه مثلا خاندان شیعه در نقل و نشر میراسه مثلا یا معارف شیعی که در واقع این عنوان تاریخ فرهنگی خوب یک انتظاری ایجاد می‌کنه که بیشترم تو بوزه جامعه شناسی تاریخی یا جامع شناسی فرهنگ مثلا بله. بحث میشه نکته بعد این که این خاندان ها حالا اگه دوستان سوالی دارن بگم وگرنه من از زمان سو استفاده میکنم اینکه این خاندان ها نقششون همیشه ایجابی و مثبت بوده یا نقش های در واقع منفی هم داشتن خب خاندان ها توی فضای خوب معصوم که نیستن توی فضای رقابت ها و باغذ خب ها یا مشکلات و تهدیدها ها ممکنه تو نقل میراس حادثه و اخبار دو تا لغزشا افراد تا تفریطای شده باشن حالا شما تو سه خوب به صورت متمرکز کار کرده دیگه ابو رافع، میسن و جعفر اینو میبینید توش یعنی اینکه این اف این خاندان ها به جهت جایگویی خب ما میدونیم مثلا خاندان جعفر یه جایی با حسنی ها های خونینی دارن که باعث تا خروجشون و مهاجرتشون از مدینه میشه یا تا در مورد بعضی موارد هم داریم که با خاندان حسینی ها هم درگیری هایی داشتن و مثلا علت مهاجرتشون به مصر همین درگیری بوده که در مدینه با علوی ها داشتن این درگیری هایی که ممکنه با خاندان دیگه هم داشته باشن آیا تأثیر تو نقل میراث داشته شما حالا دیدید که ما وقتی میخوام این میراس رو نقل کنیم و دقت کنیم بدونیم که خب این معلف این راوی داره این مختصات فکری و اختزاات بوده و ما که از یک سنی انتظار ندارم که حدس قدیر رو واقعی قدیر رو به اون تمام جزئیاتش نقل بکنه بدونیم خب اینا به خاطر جدگیریاشون تا بهترین گزارش رو فره بهتر یا این گزارش رو لاغرتر بحث کنن خود شما فرمودید قاعدتا همه یه دست نیستن به ویژه تو خاندان جعفر این دو دستگی کاملا پیداست یعنی دو تا خطه مقابل هم هستن یعنی به صورتی که حتی تو دوری امام جعفر صادق وقتی بحث نفس زکی مطرح میشه این دو دستگی کاملا پیداست و حتی یکی از فرزندان عبدالله ابن جعفر رو یعنی سر همین درگیری ها ایشون حامی امام جعفر صادق بوده فرزندان یعنی عموزاداش میکشن یعنی اسمایل رو اسمایل ابن عبدالله ابن جعفر رو یعنی بر اساس این که نمیاد به پیونده به قیام نفس زکیه در واقع ایشون رو از میان بر میدارن و میکشنش یعنی عموی خودشون رو این خانم هم میکنه این قدرت خانوم ها رو نشونده خانوم هست هم افراد دیگه هستن میخوام بگم تا این اندازه هم هست یعنی طبیعیه به نظرم حالا بذارید من مرحله دوم رو بگم شاید به نفی این رن حالا اون بحث اصلی که بس برسرین است که بالاخره ما این مجموعه رو داریم ما یه مجموعه داریم به نام روایات خب این مجموعه که ب... حالا نمادش هم بگیم اصول اصول یعنی کار کافی. کافی و کافی خب اینا چه ظرفیتی دارن برای موابیس تاریخی ما ببین اون چیزی که مربوط به تاریخ اهل بیت میشه این در واقع سوال ما این بوده به این پاسیم <تصح> پاسخ بدیم خب به نظر میاد که این حالا به صورت کلی اگه بخوام پاسخ بدم در واقع این کتاب ها یعنی کتاب های حدیثی که نمونش کافی هست به کتاب های شیخ صدوق هست کتاب های شیخ توسی هست اینها در واقع میتونیم بگیم که ظرفیت منحصر به فردی دارن تو برخی از عرصههای های مربوط به خاندان ها حالا چون من همه چیزی که میگم یه برش خاندانی روش هست یعنی مطلقاً نمیگم میگم برای چون کار من اینه که میخوام ببینم در واقع این کتابهای روایی برای خاندانا چه نقشی دارن برای اینکه تاریخ بیان بکنیم تاریخ رو به نظر میاد که در واقع اگه این کتاب ها نباشن ما برخی از یعنی تاریخ مربوط به این خاندان ها رو نمیتونیم تکمیل و باستازی بکنم حالا میگم از چه جهتی ببینید ما کتاب های حدیثی ارز کردم که یه بخشش سنده ما یعنی ما یعنی ویژگی کتاب های حدیثی اینه که بالاخره یه مطلبی رو وقتی میخواهد نقل بکنه یه سندی باید اولیش بیاد حالا این میخواهد اصلا فرض بفرمه اصول کافی باشه، بخاری باشه یا کتاب های نسلم مسنف باشه یا کتاب دیگه این ویژگیه که به لازه سوری و ظاهری و شکلی به لازه ساختار سند مهمه تو کتاب های حدیثی و رو این سند ما میتونیم کارهای آماری زیادی انجام بدیم یعنی اطلاقا ما یه موقع است که یه, یه گزارش مستقیما میخواد بگه فلانی این کار رو کرد خب ما شاید این رو نپذیریم ب هدفی داره این کسی که داره این رو میگه بالاخره یه قصدی داره ولی یه موقتیه که ما میگیم آقا یه سلسله سندی هست این گفت به این این از این شنید تا اومد به اینجا در واقع ما کارهای آماری روی اسناد روایات خیلی میتونیم انجام بدیم و انجام هم شده نمونه واضحهش کاری هست که آقای یمبل انجام داده که تاریخ گذاری روایات رو میکنه بر اساس اسناد یعنی اینکه این سند با توجه به این محتوا کی تولید شده حالا اونا میخوان بگن تولید شده یعنی نظرشون اینه که در واقع اینا در واقع حقیقتی نداره و یک کسی تولید کرده اون تو کی تولید کرده این رو از این سند میخوان استفاده کنن که در واقع تولید این متن کی بوده من از این زاویه ورود نمیکنم ولی میخوام بگم این سند اهمیت داره سندی که میتونه با ما حرف بزن علی الرغم اینکه ما میگیم این سند چیه چرت و پرتش اومده ولی اینطوری نیست یعنی ما بر اساس تو بحث خواندان ها بر اساس همین اصلا اولا ما وقتی میخواییم بدونیم که افراد این خاندان چند تا مثلا من برای خاندان میسم که هم پنجاه 51 یک نفر رو شناسایی کردم که تو این تو این سقر افرادی هستن که در واقع ورود کردن و روایت نها کردن خواندان زیاده ولی اونایی که اسمشون میمونه بلاخره یه نقشی داره این رسمشو میموندی همینطوری نیست که اسم فرد بمونه تو تاریخ چرا اسم من نمیمونه آیا قرارت چرا شما <تصفح> <فضح> <خبا ندارد> اون بلاخره اون خیلی در واقع آدم مهمیه که میتونه اسمش بمونه به نظرم از این زاویه یعنی اون کسی که اسمش میمونه بالاخره یه آوردهی داره که اسمش میمونه تو تاریخ مثلا من خاندان رو تونستم پنجای یک نفر رو شناسایی بکنم. خب قبلش نمیدونستم که ولی وقتی رفتم اسناد رو دیدم ببین الان خب کارهای کامپیوتری هست اینا رو راحت میشه به دست بیاری شما مثلا بزنی که میثی بزنی مثلا من آل جعفر رو با واجه های مختلف شما کاملا به دست میاری که مثلا آل جعفر تو سقرن اول چند نفرند کیا هستن دارن کار میکنن اینا رو من راحت یعنی یک اول اینکه من میخواهم این خاندان رو به دست بیارم خب بنابر این سند که این سندام بیشتر تو کتاب های روایی هست یعنی تو کتاب های روایی ما بیشتره چون محدث در واقع مقید هست که با سند بیاره و بگه که این مطلبی که من دارم یا با این سند دیگه بنابراین خیلی کمک می‌کنه به کار خاندانی که من دارم اول این کار من اینه که بدونم مستره و دامنه خاندان که با سند به من کمک می‌کنه و می‌تونم شناسایی بکنم و این کارم کردم یعنی الان کاملاً برای من مشخصه خاندان میسم تو سقرنبل اینقدر بودن و خاندانه فرض بفرمایید که عبورافه این تعداد بودن و خاندان جعفر این تعداد بودند. اینا این که در واقع نقشی داشتن توی نقل روایات دومین نکته که یعنی کاملا از این احادیث ما میتونیم متوجه بشیم بحث بر سر این است که اثر بزرگی تحصیل پذیری بلاخره این فرد از کی داره اثر میپذیره رو چه کسی داره اثر میذاره؟ یعنی بحث شاگردی و استادی کاملا اینجا پیداست یعنی ما میگیم که این آقا فرض بفرماید که تو مکتب قوم اثر گذاشته به واسطه فلانی که از قوم اومده داره از اشون چی میگیره؟ روایت میگیره یا خودش از مثلا مکتب مدینه یا مکتب کوفه اثر پذیرفته به خاطر اینکه استادش اون فرد کوفی هست و اون فرد مثلا بغدادی هست اینو راحت ما از روی اسناد میتونیم در تاثیر و تاثور رو و اینکه در آبشخور فکری این فرد کیه و تو کجاها داره دخیلی اثر میذاره رو به راحتی ما و تحلیل اسناد میتونیم به دست بیاریم یعنی شما وقتی بیاری اینها رو حالا بیاری شاخه بندی بکنی حالا جدول و نموداری کس براحتی که از به راحتی دست میاری که از کی داره اثر میپذیره به اینکه جایگاه این را، راوی و دامنه نفوذش چقدره یعنی شما وقتی ببینید که مثلا ابو حاشم جعفری این تعداد روایت داره نقل میکنه که اصلا وقتی میتونید کاملا یک کتاب تدوین بکنید از مسنده ایشون یعنی برای مسنده ایشون یک ای کتاب تدوین شده مثلا سلیمان جعفری کاملا میتونید یک کتاب برای ایشون خب نشون میده که بالاخره ایشون دامنه ای کارش خیلی وسیعه یعنی نفوزش خیلی وسیعه. نشون میده که ایشون مثلا فرض بفرمایید که یه جلسه درسی داشته یعنی چهار تا شاگرد به بره داشته که بینا رو داشته منتقل میکرده و اینا هم حالا اون شجره هایی که میکشن مثلا یونبول وقتی شجره ها رو میکشه حدیث رو کاملا نشون میده که از کی به کی داره منتقل میشه و شاخه اصلی کجاست و فریه ها کجاستن تو اینجا در واقع ما دامنه این نفوذ این فرد رو و جایگاه این فرد رو و اینکه که چه مقداری مثلا به امام نزدیکه رو کاملا میتونیم به دست بیاریم با کدوم امام ن... یعنی ایشون ارتباط داره و روایت کدوم امام رو داره نقل میکنه و چگونه در واقع نقل و انتقال دانش و گسترش دانش به چه صورته مقصود این است که حالا ما مدرسه که اون دوره میگیم در شکل میگیره مدرسه مثلا فرض بفرم مدرسه کوفه چطوری رو تو مدرسه مدینه از طریق این خاندان تو مدرسه به مثلا قوم در اثر میذاره به چه صورت از طریق چه کسانی نقل و انتقال دانش رو ما به راحتی از فقط سند رو من دارم الان بیم میتونیم به دست بیاریم معطوف به خاندانی که دارم عرض میکنم موضوعات حدیثی میراستی که این خاندان ها منتقل کردن اینا گونه شناسی شده آره اون تو محتوا میام من الان با محتوا اصلا وارد نشدم یعنی دو نقطه محتوا وارد با. نشدم قبل محتوا دو نقطه یعنی قرار وارد بشم تو جلسه حالا یه مرور میکنم آره چون وقتم آره تام وقتمه نیست نه برامون هم این وقت قابل با. اجازه باشه انجام میکنم ولی دو بخش داره دیگه یعنی کتاب س... یک کتاب حدیث دو بخش داره سند و محتوا سندش و تاقم من میخوام بگم سندش خوب با آدم حرف میزنه شما اگه حرف بکشی ازش صامته ولی خیلی کمک میکنه به شما اتفاقا تو این جاها کمک زیادی میکنه چون اصلا به این نیت تدوین نشده به این نیتی که من دارم میگم بره. تدوین نشده که بیاد یه کسی خاندانها ها رو بحث کنه ولی من تو بحث خاندانیم خیلی کمک میکنه به من اینها ارتباط میان خاندانها ها رو تو همین اسناد به راحتی آدم میتونه ببینه خاندان های مختلفی که از هم اقسوی اقتباس دارن شناخت اسا به من میگم میکنم که خود رجالی ها وقتی میگن فلانی در واقع شاگرد فلان امامه یه بخشش همین هست که میرن بالاخره میبینن که کافی داره میگه که ایشون از امام در داره روایت نقل میکنه اگه ببینم مثلا 4 تا روایت نقل کرد یعنی شاگرد امام کاظم یه بخش از اظهار نظرهایی که اینا دارن میکنن معطوف به همین اسنادی است که دارن میبینن و بر اساس اون دارن قضاوت میکنن بنابراین ما اون اسناد رو ما کارهای آماری بسیاری میتونیم روش انجام بدیم و این کارهای آماری هم یه مقداری در واقع میگن الان بحث های پوزیتیویسم می یعنی بحث هایی که یه مقداری کاملا میشتونید شما عدد بدید رقم بدید و بتونید روش حساب بکنید تو اینجاها راحت میتونیم این کار انجام بدیم و بگیم که آقا این تعداد از این خاندان بنابراین این خاندان نسبت به اون خاندان نقش بیشتری داشته به راحتی آمار این کار رو میتونه انجام بده خب خیلی هم تو تاریخ دنبال همین هستن یعنی میگن که تاریخ در واقع اون تاریخی که بتونه به صورت حالا تجربی به ما اطلاعات رو بده اون به درد میخوره و اما از طریقه میتونیم این کار رو انجام بدیم خب بحث محتوا که بعد از اون سند میاد اون هم خب اهمیت داره و تو این ارسا میتونه به ما کمک بکنه اولا اینکه بالاخره دقدقهای فکری مثلا این سقرن چی بوده مثلا من تو خاندان فرض بفرمایید خاندان مینستن وقتی بحث میکنم بحث مهدویت مطرح نیست ولی مثلا وقتی میام توی خاندان دیگه میبینم که بحث مهدویت یه ذره پررنگتر مطرحه یعنی بیشتر درن رو مهدویت روایات رو نقل میکنند یا مثلا میبینم که ابو هاشم جعفری اصلا گیرایش فکریش اینه که فقط داره موجزات رو نقل میکنه کرامات رو نقل میکنه یعنی بیشتر این کرامات رو ایشون نقل کرده تو بعضی یا بعضی از رجالی ها گفتن که ایشون به جهت این که والا تعبیر خاصی دارن میگن قوله ای ارتفاع آن یعنی این کشی میگه میکنم کشی میگه که قوله ای ارتفاع آن و میگه مورد پذیرش نیست حالا به خاطر اینکه میگه من هر موقع به شهر می رفتم یه معجزه‌ای میدیدم ازش و این موجزات رو هم نقل میکنه، حالا پیراماتو و که نشون داره نقل میکنه. بنابراین این که فکری جامعه شیعه تو این قرن اول چی بوده مثلا هویت شیعه تو قرن اول با بحث امام علی اصلا پیوند خورده بود یعنی اینکه امام علی هویت اینهاست و اینا باید هرطور شده در برابر اوومیان از امام علی دفاع بکنن نظرم مخدوش بشه چهرش و بنابراین روایات زیادی رو دارن یعنی پتانسیلی زیادی رو اینجا دارن مصرف میکنن به خاطر اینکه درواقع اون رو تر بکنن. و همینطوری مزات دیگه ای که حالا من تو اینجا با توجه به اینکه دیدم سقل این روایت چیه یعنی به مثل حرف اصل این روایت چیه عنوان زدن موضوع زدم میبینم که اصلا فرض بفرماید توی خواندن ممکنه که مباعث اخلاق خیلی کم رنگ باشه یعنی کم رنگ ولی توی یکی می‌بینی که آداب و سنان خیلی نقل کرده مثلا امام گفته که راجع کبوتر مثلا شما تو خونتون کبوتر نگهداریید راجع اسب اینطوری گفته راجع فلان. این فرصته یا تهدیده چی این فرصته یا تهدیده یعنی ما بگیم اینا تو این تخصص داشتند دو دغدغه‌شون دق این بوده این سالات از اهمیت میکردن یا اینا تو در زندگی عمر توجج قرار می‌دادن یا نه به خاطر خواسته شما رو به قول شما تولید گزارشه ببینید حالا مثلا همون داره تو خونه رواج پیدا بکنه روایتی رو حالا پر رنگ می‌کردن یا می ساختن اصلا من توی عرصه باید و اینا نیستم ببینید ما حالا مورخ به قول آیدکتور حضرتی اومد توی یکی از جلسات که بود وصف به نظرم خیلی مهمه ما الان میخوام بگم, بگم که آقا من وقتی شمارش میکنم این رو می‌بینم مثلا این آقا اکثر روایتش مصیفه کرامات و معجزاته بار من یه بار ابو یعنی تو مدینه معجز فهم کراماتی که نخ از اهمیت می خوندم یا شکمی بود یا پولی یعنی یا در حال گرفتن قضاوی نزد امام بود یا در و بود که امام از دل خاک از دلت از دیوار یا از آسمان میچید و بهشون آره. مثلاً علایتها میفرد حالا بالاخره وقتی اینا نقل شده با اون کتاب داره اینا رو میاره معلومه که چیز موجهی بوده دیگه یعنی برای اون اون دوره آره بازار داشته داشت. من میخوام بگم که وقتی میخوام من شناسایی بکنم دقدقه های اون دوران رو خب این خیلی مهمه بگم که فرض بخوند دقدقه اون دوران شاید این چیزایی که ما الان دقیق داریم مثلا اون نه نبو. موقع نبوده دقیقای چیزای دیگه بوده خاندان یا دوران ببینید من حالا بورش خاندان دارم میزنم خاندانم به دوران دیگه هم به بعد میشه شیعه یعنی من میگم وقتی این فرد از خاندان اینقدر این رو نقل میکنه معلومه که بالاخره شیعیان این براشون مهم بوده و تو این عرصه مثلا بحث مهدویت الان برایشون خیلی مهمه مثلا تو دوره‌ای که ومویان دارن بر میافتن اباسیان دارن میان در واقع وقتی میخوان مباحث مهدوی رو نقل کنم در واقع شاید میخوام برم به مقابله ای با زیدیان که یه نوع ادعاهایی داشتند ها. خب اگه توی زمان یه خاندان یک موضوع خیلی بیش از حد معمول داره تاکید میکنه و بقیه خاندانهای شیعه به این موضوع توجه چندانی ندارن خب حتما نمیشه به شیعه نسبت داد ببین خاندان نسبت بدیم اون... یه تیپی از خاندان یه تیفی از شیعه میگم بالاخره ببین حالا اینا تافه دیگه من قابل بحث هر همشون محدثن همشون و خب حداقل اینکه به کل یه جور یه جور نیست حوز کار میکنه یکی که یکی... دیگه میشه بگم نسبت به شیعه نمیشه داد نسبت به اون خاندان میدی دست کمش همین که همیش همیش همیشه فرمودن شما اگه شواهد دیگه پیدا کردید میتونید یه ذره توسو دست کمش همینه که بالاخره بله میگم شواهد دیگه میخواد دیگه, دیگه, دیگه شیعه راحت میشه دون را. هر کده مرگی گوشه, ای رو گرفتن گوشه رو تعمیم آره. خاص باشه یک خاندان فقطی چند دغدغه ای داره و در همون دوره بقیه خاندان ها چند دغدغه ندارن اون دغدغه باید به با اون خاندان نسبت بزنم نه به کل بله میشه من یه وضع مشترکش بشه. بله حالا اقلش همینه که بله. میفرمایید شما مثلا فرض بفرمایید که حالا سلیمان جعفری با اینکه حالا یه نسل قبل از ابو هاشمه ایشون مثلا بیشتر کارش فقهه اکثر چیزی که نقل میکنه فقه نقل میکنه یا علی بن اکثر موایزی که در نقل میکنه کلام این یعنی رشدش کلامه یعنی اینا رو میتونیم ما شناسایی بکنیم رقابت های خاندانی کاملا به نظرم ش... قابل شناسایی تو متن این روایات اه... از چه یعنی نفی خاندان دیگه یا نه بله این که میگه خاندانی برای اثبات خودشون یا نفی خاندان دیگه یا ام... هر دوش. یم قوابت های خواندنی که عرض میکنم یعنی این روایتی که داره درست میشه یه بخش هایش فرض بفرماال اون بحثایی که تو کتاب های های مثلا کلامی هست یه مدرسه فرض میفرماند که این نوعسب نبد رحمان هست یا طی گرایش فکری شام بن حکم هست اینا رو ما وقتی میبینیم که این داره نقل میکن و روبر روی حملیگه هست یه مقداری احساس می که اینا وارد... شاید خاندانی نگیم ها ولی میتونیم یه طیفی رو بگیم طرفدار این اصلا یه تیفی رو اون هستن که دارن اینها رو نقل میکنن من به نظرم قبل از سند یه چیزی بوده اینجا که من نگفتم به نظرم اون مهم بوده اینجا بوده این نگفتم قبل از اینکه که یه نکته ای رو من قبل از اینکه حالا این محتوی رو بگم محتوا رو تقریبا مد نظرم بود گفتم ببینید ما اینکه به تاریخ به چه صورت میخوایم نگاه کنیم ما الان دو گونه به تاریخ داریم تو این دو نوع نگاه است نوع استفاده ما از این منابع حدیثی رو به دو گونه ممکنو رقم بزنه یه نگاه اینه که به اصطلاح مورخ وقتی میخواد کار بکنه یه طرح و الگویی داره بر اساس اون حالا اسمشو بذار گفتمان وارد میشه تو گفتمان مثلا یه رقابتی رو شناسایی میکنه میگه ما الان دو تا جریان فکری داریم این یه جریان فکریه اینم یه جریان فکری من دنبال شواهد هستم که ببینم این دوتا جریان فکری چطوری دارن کار میکنم بعد میام چیکار میکنم حالا کتاب های حدیثی رو میخونم از نظر کسی که داره اینطوری کار میکنه کتاب حدیثی یا کتاب تاریخی یا کتاب حدیثی یا کتاب مثلا عدبیش فرقی نداره ایشون میگه آقا کل این چیزایی حقی هست یه از، انبان خامی از اطلاعاته مثلا شما میری دیجی کالا یه انبانی از مثلا عوضالالات اینجا هست بستی به که دنبال چی دمانی باشی در واقع این رو انتخاب میکنه و چیدمان دمان خودت رو طراحی میکنه. آره, خریده آره. ببینید ما الان تو تاریخ واقعش توی یعنی اون مورخ بسته به این که نگاهش به تاریخ به صورت باشه یعنی وقتی میخواد به جریانی نگاه کنه رقابتی نگاه کنه گفتمانی نگاه کنه دنبال شاهد و مدرکه این شاهد و مدرک رو از هر جایی میتونه پیدا بکنه حتی از اون روایتی که ما میبینیم کذاب صیفه بناماری که کذابه از اونم میتونه استفاده بکنه مثلا فرض بفرمایید کسی میخواد بگه که خانم ها مثلا تو صدر اسلام تو فوتوهات شرکت میکردن فرض بفرمایید خب وقتی مثلا سیف ابن تو گزارشش میگه که مثلا از تایفه بنی تمیم این تعداد خانوم شرکت کردن توی مثلا فلان جنگ خب من میگم که این بنی رو بله داره دروغ میگه که میخواد مثلا موقعیت قبیله خودش رو برجسته نشون بده ولی دایه نداره که مثلا بگه این چارت تا بودن این رو مثلا بخواد اضافه بکنه بناین من وقتی دارم تاریخ اجتماعی یه تاریخ زنان رو بررسی میکنم این گزارش یعنی دروغ آقای سیف ابن نامر همه چیزش که دروغ نیست یعنی ایشون هم وقتی دروغ درست میکنه یه دروغی درست میکنه که قابل پذیرش اون جامعه باشه و این وقتی زنان اگه شرکت نمیکردن اصلا به شما ایشون نمیتونست بگه که خانو. اگه عفه اون دوره نبود نمیتونست رو بگه یعنی از یه جهت داره دروغ میگه ولی از جهت دیگه دقیقا مثل دروغ‌هایی که یه فردی داره متهمی داره میگه قاضی از دروغ‌های اون یا اون کسی که پلیس از دروغ‌های اون داره علیه خودش استفاده میکنه یعنی تو تره خودش تو تره خودش اینو تو دام اون میندازه حالا ببینید مورخ یه نگاهی اینه که بله مورخ با یه الگویی وارد تاریخ میشه با یه گفتمانی وارد تاریخ میشه و دنبالش شاهد داره گرده این شاهد رو از هر جایی می‌تونه بگیره لازم نیست که حتما از کتاب تاریخی بگیره اطار کتاب حدیثی خیلی به دردش می‌خوره چون این کتاب حدیثی اصلا به جهت تاریخ نگاری تولید نشده همین سندی که من گفتم کامل می‌تونه به دردش بخوره بنابراین اگر ما این نگاه رو داشته باشیم یعنی نگاه حالا گفتمانی از, از این منظری که حالا بحث میشه ورود بکنیم ما با یه انبونی از اطلاعات مواجهیم و اصلا ما صحت و سقمم بحث اعتبار سند اصلا کار نداریم چی کار داریم این سندش معتبر بشه و معتبر نباشه ما مثلا میخواییم ببینیم که فلان واجر رو فلان دوره بوده یا نبوده مثلا میخواییم ببینیم که فرض بفرمین که خلافای راشدین مثلا بوده یا نبوده مهمه برای ما مثلا خواهی این رو حالا باید بیاریم توی گفتمانی با شواهد خودش اون برای ما تفاوت نداره که شاهد ما توی کتاب حدیثی باشه کتاب تاریخی باشه یا ادبی باشه بنابراین اگر ما به این, از این زاویه نگاه کنیم متفاوت میشه یعنی ما کتابای حدیثی کاملا به درد ما میخوره. یعنی به ویژه حدیثم چون حالا تو دوره اول تدوین شده جزیه منابعی هست که تو صدر اول تدوین شده از این جهت کاملا قابل اعتبار در واقع ما در این روایات رو به عنوانی مواد, مواد خام داریم ازش استفاده می و براساس اون الگوی که داریم در واقع توسعه می دیم مثل حالا من این رو شاید خودمم یعنی مقالم نوشتم ولی شاید الان خیلی روش تاکید نکنم مثلا کشی یه فکر می کنم تا خبر دار به شهادت میثم تا خبرش هم از نوع پیشگوییه یعنی پیشگویی شهادت میثم اصلا ما روایاتی که از میسم داریم همش پیشگوییه یعنی همش مایش اش آینده است آینده اینطوری اتفاق میفته خب من مثلا یه چیزی تو ذهنم الگویی که میگم یعنی من مثلا میگم که آقا روایات قاعدتا داره هی توسعه پیدا میکنه یعنی بار اول که نقل میشه اون کسی که میشنوی سوال براش مطرح میشه دفعه بعد که اون کسی که میخواد روایت رو بگه یه توصیه میده که اون اشکال رو رفع بکنه دوباره این روایت که نقل میشه یه جاش یه نقصی داره فرد سوم میاد اینو یه ذره توصیه میده تا نهایتاً یه جور این کاملاً بسته‌بندی میشه و کامل دیگه مرتبه یعنی ابتدار اوج داره و فرود داره مثلا این یه طرح برای من ممکن قابل پذیرش نباشه ولی یک کسی با این الگو وارد تاریخ میشه اگه با این الگو وارد تاریخ میشه می که این اخبار شهادت می هم کاملا این تا به این الگو هست یعنی مثل اون نمایشنامه ها یا فیلم های ادبی در قهرمان داره یه ضده قهرمان داره یه صحنه داره یه فرود داره یعنی و مثلا بار اولش به این صورت اینجا شناقاه بعد این کامل میشه و بعد به این صورت تکمیلی میشه و بسته بندی میشه. ببینید من مقصودم اینه که یعنی یک حدیث در مرحله در مراحل مختلفی تدوین میشه. ندرید یعنی. مرحله واحد بعد از مرحله واحد رو معن نقل کرده. ببینید این من این برداشته کردم، درست کردم، درست ببینید کردم. همش معن نقل میشه. یعنی این 5 تاشم فلانی از فلانی از فلانی. مثلا بار اول اصلا امام علی نقشی نداره توی پیشگویی شهادت میسم میسم خودشه که داره میگه و نمیگه امام علی به نظر من تو اون مرحله آخر برای اینکه این, این پیشگویی کاملا مشروعیت پیدا بکنه پای امام علی هم به وسط میاد و امام علی داره پیشگویی میکنه ببین بسته به این که این رو چطوری شما بخوایید یعنی یه قاعده میخوایید شما درست کنید بگه هرچی جلوتر میریم این پیشرفت میکنه. یعنی توسعه پیدا میکنه مثل داستان ها آره. شما چک نویس اولیه هست این رو یه بار عرضه میکنی بعد یه کسی به یه ایراد میگیرم اینجا نا... اینجاش ناقصه دوباره این رو کامل میکنی چون اینا بالاخره وقتی نقل میشده تو این گفتمان ها چکشکاری میشده دیگه من،, من گفتم ولی من گفتم با شما بسته بین که با چه الگویی بیای نگاهید به تاریخ به چه صورت باشه به این رحمی که من شما یه موقع تئوری، نظریاتی از جایی داری و بعد میخواید تو تاریخ بیای شواهدات و تقویت باید. خب کتاب حدیث هم یه شاهده الان من از کتاب حدیث کاملا این رو میتونم بگم یعنی برای فرض کن میام روایات مربوط به شهادت میسم رو جمع میکنم و بعد می‌خوام ببینم که این کدومش اوله کدوم دوم کدوم سومه خب بسه به اینکه چه الگوی ذهنی داشته باشم اینا رو مرتب میکنم اون موقع در واقع اون الگو ذهنی مهمه و اینا همه شاهده یعنی من شاهدم رو دارم از حدیث میگیرم شاهدم رو دارم از کتاب مثلا جاهز میگیرم و هیچ فرقی هم برام نداره که از کجا این رو بگیرم خب نکته ب... اکمیل فرما شد دوست هزم ولی تذکر قبلش الان من فریب فریبه نور حیاتو خوردم فکرم هنوز ازان نشده موالشه کمدم هم دیم ازان گفتن و فکر الان ازان هم به اتمام رسیده شاید ا... عا... ولی خب الان چقدر مناسب باشه که موقع ازان ادامه بدیم حداقل این اعترافه بکنیم که انشالا بر جلسه ولی زمانی باشه که به ازان خط بشه و این ازان آره اصلا شاید مناسب نباشه شد مناسب هنگام ارزان از ادامه بدیم ولی خب این توی به جلسه ما یه خورده بیشتر رابط پیدا بکنه این تراینده که شما مطرح کردید رو تو قالب خاندان ها میشه تبیین بکنید حالا ممکنه این که شما گفتید در سلسله روایات یا به شما فرآیند یک تاریخی یک روایت این فراز فرود قابل نشون دادنه حالا بقول شما با اون که تو ذهنمون تحلیلگر هست حالا تو خاندان ها اتفاق افتاده اصلا اتفاق افتاده نیافتاده بول همه شما خانواده‌ای که یک نگاهی درشون غلبه داره پیشگویی یا این ایجابی سلبیش مثلا عدم توجه به مهدویت این خاندان مثلا جعفر به روایت مهدویت زیاد دغدغه نداشتن پیگیر نبودن یا نقل نمی‌کردن این سلبیش این ایجابیش این روکرد کلی خاندان تو این فراز و فرود روایت محتوای روایت نقش داشته ببینید بس برسر این که بالاخره این, این روایت‌ها روی ای دغدغه خاندانی هست یا نه یعنی روایات میسم رو آیا فرزندان میسم دارن نقل کنن یا افراد دیگه مثلا تو اینجا ما میتونیم ببینیم که فرزندان میسم تو بحث نقل روایات شهادت میسم نقل دارند و اینا اولین ناقلان این روایت هستند. یعنی خب این نشون میده دیگه حالا ما یا بگیم دغدغه خاندانی داشتن بلاخره جدشون بوده دیگه یعنی بزرگ این خاندان بوده و اینا متکفل بودن که این رو نقل سیانت بکنن سیانت بکنن و نقل بکنن و این رو توسعه بدن خب اطاقا ما اینجا یعنی چون خود میسم در روی چهره انقلابی میسم یعنی میسم کسی که در واقع در راه آرمان های خودش در راه حمایت از امام علی به شهادت رسیده کتا هم نیومده یعنی میثم یه چهره انقلابیه بنابرای ما وقتی اینجا میبینیم که زیدیه دارن این رو نقل می‌کنن چون تو ر... این روایات بر... از افراد با گرایش زیدی هم داریم قیام میتونه... به سیف حالا زب... سیفه میسم زبانشه ولی خب قیام به سیف و این بودن توش به اه... نخلیه میخوام بگم که به عنوان یه چهره انقلابیه دیگه زیدیه دنباله انقلاب بودن دنباله به ادم سازش بودن ایشون هم سازش نکرده یعنی کاملا از این علی حمایت <تصفيق> کرده حالا این بحثی که شما میگی رو میتونیم یعنی تو بحث خاندانی هم این محتوا رو هم ادامه بدیم و پیگیری کنیم ولی من به صورت کلی خواستم بگم که روایت در واقع یعنی این مرد بحث اولام میشد خود روایت توی تاریخ چه دخلی داره چه کمکی داره من این رو اینجا با. افتاده و خواستم بگم اگه نگاه دومم اینه که آقا ما نه این کتاب مثلا کتاب حدیثی کلونی همش سعیی اصلا یعنی چی که ما بگیم که مثلا این،, این حدیث داره با این سند به امام جعفر صادق میرسه خب این وقتی این رو فرمود دیگه کاملا قابل متبعه و اصلا نباید این بکن این یه نگاه،, یه نگاه هم که نگاه انبانی و در واقع شاهدی هست اون میگه بله و هولا اینکه امام جعفر صادق این رو فرمودن ولی تو این سلسل شواهد من این جواب نمیده و من نمیتونم این رو بپذیرم و این رو میذاره کنار اصلا بحث سند نداره اونجا ولی تو نگاه دوم نه نگاه سندیه و وقتی میگه که این به امام جفر صادق منتقل شد و اسنادش اسناد سعیه است دیگه متوقف میشون و این رو میپذیریم و بقیه رو کنار میزنیم خب ای این این در واقع اون چیزی که من میخوام بگم توی این دوتا نگاه به نظرم میاد اون اولیه با نگاه تاریخ نگاری مقداری هم خوانتره، یعنی بیشتر همخانه تا این نگاه دوم توی این نگاه دوم یعنی نوع نگاه بایدی و تجویزی هست و آره که قابل پذیر شاید نباشه اونجا میشه یعنی این روایت الان میذاری کنار دوره بعد ممکنه همین روایت کاملا به درد شما بخره مثلا میگم حالا یکی از دوستان ما یه مقاله نوشته که امام رو امام باید غسل بده این معتقده که مثلا اینو فتاهی مذهبها در واقع اینو می‌خواستن امام رضا رو زیر سوال ببرن امامتش شو در واقع این روایت رو درست کردن که امامت امام رضا رو مخدوش بکنن به خاطر اینکه امام رضا نمیتونست بر امام هفتم مصعب بن جعفر نماز رو بخونه فاصله داشتن بنابراین اومدن یه روایتی رو درست کردم و تاکید کردن روش که اینطوری یعنی اگر مثلا یه کسی این, این رو پذیرفته باشه اون موقع بره تو روایات شواهد خودش رو بر اساس این در واقع تنظیم میکنه من منظورم از الگو این بود یعنی چیز بیرونی که از جای دیگه میگیره یه پیش فرزی رو میگیری یه رو میگیره و بعد میاد شواهدش رو از اینها تقویت میکنه و تحکید میکنه ببین اون چیزی که بتونه مخاطب رو قانع بکنه وقتی شما شنیدی بگی این قابل پذیرشه یعنی ما الان اینطوری هستیم مشکل نداره ما الان تو هر دورهی ممکنه اینطوری باشه دیگه شما اگر بتونی در وقت قدرت اقنا داشته باشی قدرت اقنا داشته باشی و بتونی این رو بگی روا هست و اون مخاطبت هم بتونه این رو به پذیره به نظر قابل پذیرشه یعنی و قتل امکان یه ذره بالاتره. مشکلی نداره. یعنی بالاخره از شد ما نگاه جریانی داریم دیگه چون روایات ما الان دو دسته هستند یعنی ما وقتی وارد روایات میشیم واقعا احساس میکنیم که مثلا تو مدحه ما مساله راجبه یونس بن عبدالرحمن راجبه شده. می‌بینیم دو نوع هست هر دو هم امام داره می‌فرمایا. هر دو هم اسنادش فیل جمد قابل پذیرشه. بنابراین باید با یه الگویی وارد بشه اینها رو معنادار بکنه. وقتی با اون الگوا وارد بشی اینا معنیدار دار میشن. پیش نه پیش همینطوری نیست آره نه ببینید شما پیش هم بر اساس همین شواهد پسو فیش میکنی ممکنه اون رو یه مقداری تعدیلش بکنی. درسته یعنی اون کاملا اونطوری نیست وقتی بیای تو عرصه ممکنه ما موداری تعدیلش بکنی خود ازش تعبیر کنه به فرضیه که ممکنه در پایان تاریخ اصلا ابطال باشه خود به ناصب ورسی که ممکنه یعنی اصلا درست نبود اون فرض اولتون درست چون نبود. بعضی موقع این روایات واقعیش اینه که آدم میخونه اصلا معنیدار نیست چون وقتی بیاری توی یه معنی معنیدار میشه اون طرح اگه اشتباه باشه چی خب من میگم اون طرحت اگر روا باشه و بتونی یه ساختمون باش درست کنی که این کس که میبینه بگه آقای این ساختمونه اینجا در داره اینجا اتاق داره این لامف داره یعنی اون آقایی که میبینه بگه بالاخره این ساختمونه رازی بشه مثلا ممکنه یه دی دی دی بصلا آجرش بگه خرابه ولی ساختمون رو لطمه نمیزنه شما یه موقع هست که نه یه زیراوی این رومه مبانیشون رو مبانی زیر سؤال اون خب فرق میکنه خب به نظرم تا همینجا کفایت میکنم دکتر قرارتی من, من آره. خانه بشم مخاطمین اگر بگم محبوب باشه تا اینجا خب درسته یاده با نوش کردیم خدمت دوستان نکته آخرش هم که گفتم در اوقع اصلا یه آخریش هم این بود که بالاخره این بحث بازسازی که مهمه الان ما از این کتاب از ای همین روایت کاملاً که کتاب های رو بازسازی میکنی من برای خاندان ابو رافی چهار کتابشون رو باستازی کردم یعنی این خب مهمه, خیلی مهمه. خیلی. و برای کتاب برای خاندان جعفرم ابو حاشم جعفری شده سلیمان جعفری هم جا داره و خود عبدالله ابن جعفرم روایتش ها به اندازه هست که بشه اینها رو جمع کرد خب عذر خوش میکنم اگه دوستان سوالش مد مدنظرشون نیست من یه جمعبندی و یه باستازی از عنوان نشست داشته باشم از ببینید بله بفهمید خیلی از افراد رو شخصی رو یعنی یه شخص خاص و برای او دیگران هم کار کردن و جنگ کردن ببینید مستند خاندان, درست خاندان میشه الان برای جعفر برای جعفر و خاندانش کاری ای کار کارو کرده یعنی مجموعاً جمع کرده. حالا من نهیدن فقط شنیدم چون همایش جعفر داره منتشر می کنه یه که کل روایات مربوط به خاندان جعفر ابن عبید و جعفر عبدالله ابن جعفر و فرزندانیشون رو جمع کرده به عنوان یه مجموع جدا ابو حاشم جعفری چاپ شده عطبه عباسی چاپ کرده من خودم سلیمان جعفری رو جمع کردم همه را. چاپ نشده ولی قابلیتش رو داشت دیدم خیلی زیاده قابل توجه بود ولی نمیدونم رقم زدم ولی یادم نیست و پرسیدم یعنی از همایش پرسیدم که چنین ظرفیت رو داره کار شده نمیدونم گفتن آقای بحرالولون فیل جمعه چون هفت جلد داره تدوین میکنه این کار شده جا داره یعنی برای این مثلا آره مثلا ابو ع... رافه من تقریبا همه رو جمع کردم یعنی تو کتاب خاندان ابو رافه تقریبا همه رو جمع کردم میسم رو هم تقریبا این کارو کردم حالا چون بعضی موقع متن زر... مثلا ف... یه متنی حالا مثلا کافی یه... مثلا هشت صفحه داره اتفاقا این نکته را میخواستم بگم بعضی موقع کتاب های حدیثی یه نکات منحصر به فرد تاریخی دارن یعنی تاریخ اصلا نقل کردن کلینیت اتفاقا این طوریه. مثلا راجع به دعوای همین نفس زکیو یعنی اون بچه های فرزندان جعفر اصلا یه روایتی نقل میکنه هشت صفه از پشت سر هم این روایت میشه خب میگم ببین ایشون چون یه پاش مربوط به امام جعفر صادق بوده به خاطر امام جعفر صادق رفته یه کسی که راجع به این قیام کتاب نوشته معلومه از اون کتاب گرفته یعنی سندی که داره میاره نشون میده اون آقا که کتاب کرده راجع به مقتل نفس زکیه از اون کتاب گرفته کلینی و داره متن اون رو میاره ولی چرا داره میاره اون رو فقط به خاطر اینکه مربوط میشه به امام جفر صادق و موزه امام جفر صادق رو اینجا میتونه توضیح بده یعنی اینجا نه اینجا رفتار معصومه ببینید اینجا رفتار قول نیست یعنی رفتار یا تقریر امام اینجا ولی به خاطر اینکه میخواد موزه امام رو راجع به نفس زکی نشون بده یا قیام یحیی مثلا دوباره یه متنی رو میاره از یه کتاب دید. معلوم از کتاب داره میاره راجع به خب اون معلومه که رفتی کتاب رو دیده و گون میکنه که این موزه امام کازم رو راجع به قیام یحیی داره نشون میده این رو نقل کرده کافی کل این از این چیز داره اتفاقا تو بعضی جاها صد هم زیاد داره یعنی متاسثر کل اتفاقا تو بعضی جاها یعنی منبعش کتاب‌های کتاب های تاریخی هستن بویه بعضی جاها که قبل از اینکه وارد بشه به متن حدیث یه توضیحی میده پسا راژع به و شاو دته پیامبری توضیحی میده اون توضیحی که داره میده اصلا بر اساس روایت خود ما نیست بر اساس متن‌های تاریخی اهل سنت است تو کلینی است عسقای می‌کنه نمی‌شد خود اجازه می‌فهمید من بحث رو جمع بکنم چند دقیقه پایان اگر دوستان سوال دیگه ای نیست که مطرح کنند من فکر کنم بحثمون با در واقع ظرفیت روایت برای بازسازی تاریخ فرهنگی خاندان شروع شد در نهایت به نقش و سهم خاندان های شیعی صدر اسلام در انتقال معارف شیعی خط شد یعنی این بحثم فلجمله بحث شد و چقدر این خاندان ها در نقل تراس شیعی یا معارف شیعی نقششان شما فلجمله هم گونه شناسی کردید که مثلا فلان خاندان مهدبیت رو احتمام نداشته یا اکثران مثلا خاندان میسم به موضوع پیشگویی مثلا احتمام داشتن که این خودش خوب اینشندنده نقش و سهم این خاندان ها در نقل و انتشار تراث شیعی. جناب دکتر داداش نژاد خاندان شی صدر اسلام رو محدوده زمانیش رو دوران عصر حضور ائمه مشخص کردن و گفتن خاندان های متعددی هستن که فعال بودن، میراث زیادی رو نقل کردن که خلاص خاندانون به صورت خاص خاندان ابو رافع، خاندان جعفر و خاندان میسم رو نام بردن و تا گفتن مثلا خاندان و یک راوی رو داشتن که روایتگر احادیث بودن البته یه بحثی هم مطرح کردن که تفاوت بین روایت تاریخی یا گزارش تاریخی و گزارش روایی وجود داره که لازم موضوع سند اینا بحث کردن و گفتن یه جاهایی هم مثل تاریخ تبر خیلی نزدیک میشن ولی خب از ویژگی و مختصات کاملا یک گزارای تاریخی از یک گزارای حدیثی متفاوته و من دوست داشتم سوال بپرسم که این خاندان ها در گذارای تاریخی هم میراثی داشتن، نقشی داشتن یا فقط فعالیت و کنششون در حوزه نقل روایات دارم، بوده. مثلا خاندان نوفلی اصلا کتاب دارن، کتاب الاخبار داشتن. نو می‌خواستن بپرسن، نپرسیدن. حالا شما که ام پرسش پاسخ دادن، جنبندگی بود به <تصفيق> جای, آره جای این بحث هست، یعنی واقعا بحثی که آقا دکتر مطرح کردم فکر کنم هر زلش پنجره ای هست برای پنج روشای جدی‌تر که حالا ان تحت اشراف خودشون دوستان میتونن انجام بدن جنبدیشون یه سوالی اون موقع زحنا متدی می‌فرستاد بعد <تصفيق> ما گفتیم که این صدر الاسلام شما تا دوران اکون و دوران اکون دوران ربیعت شما اورا ولیین کرد. اما اگر بخم از حدیث میگم بعد مبنای حدیث و تدوین حدیث نگاه کنیم شما الان داریم به عنوان متنی یا عنوان سندی از رواییت میکنیم تاریخ کنیم بعد هم بیانمون اینه که از هر و تدوین حدیث بعد از غیبت سقورها هم ادامه پیدا کرده شاید یه مقداری بعد از غیبت سقورها رو هم بشه بین ملحق کرد تا دورگنی تا دوران تدوین حد دقل کتوبه ببینید بر اساس احال بله. کتاب هایی که مثلا فرض بفرمه صدوق و کتاب های توسی بر اساس سند مطال رو نقل می اینا از خودشون که نقل نمیکنن اینی از کتاب های قبلی دارن نقل میکنن می می می یعنی از کتاب دیگه نقل میکنن یعنی پشتش صدوق هیچ موقع از خودش نقل نمی پشتوانش کتاب و اونا برمی به صدر تدوین نشده یعنی قاله ریزی در اینجا آره. بله درسته یعنی تدوینش مالون دورست ولی من که وقتی میگم سعده یعنی دو تا قید داری یعنی من خاندان رو صرفاً بحث نمی کنم خاندانی که به نحوی با امام داره ارتباط برقرار میکنه رو برام مهمه و این تو کتاب یعنی تو دوره های بعد هم اومده تو دوره های بعد مال خودشون نیست در واقع بر میگرده و همون ادامه جنبندی <تصفيق> <تصفيق> جناب دکتر خاندانهای شیعه رو دو سنف کردن حکومت حکومتگر که حتی خاندانها رو دو سنف کردن خاندانه حکومتگر که البته شیعه هم میشن دیگه ادریسیان و این هم طبیعتاً علویان تبرستان هم خاندانهای شیعه میشن و حسنی ها زیدی هم ولی گفتید مدن نظرتون خاندانهای هستن که در حوزه فرهنگ فعال بودن من فکر کنم بازم موزه فرهنگش بعد خواستار کنم نقل میراث شیشون فرهنگ شامل بلاخره پوشش و ادبیات و اصطلاحات و شعر و اینها هم و فرض کنید که خاندانا چیزی شبیه احزاب بودن در عصر حاضر که یعنی مشترکاتی داشتن به اون مشترکات پایبند بودن و میشد اونها رو یک طیف یک در واقع گروه هدفمند نامید که امروزه این اتفاقش توی خاندان ها مطرح نباشه و بعداً فرمودید که منظورتون از تاریخ فرهنگی اصطلاحاً در واقع تاریخ فرهنگی نیست که خب خیلی چیزایی که من نوشته بودم و دیگه کنار گذاشتم در حوزه تاریخ فرهنگی من سوالاتی نوشته بودم که از سالی بپرسم چون که از اول گفتید موردتون اصطلاح نیست خیلی فاصله گرفتیم و دیگه اونا قابل طرح نیست ولی طبیعتاً بعد عنوان نشست متناسب با این محتوا مثلا اصلاح بشه که در واقع سهم این ها باشه یا تاریخ فرهنگ باشه یا تاریخ نقل میراثی و در واقع شما فرمودید گونه شناسی موضوعم کرد و گفت اسنادی که در روایات وجود داره برای ما خیلی فراورده‌های پژوهشی میتونه داشته باشه هم ارتباط خاندانانشون بده هم تعاملشون رو هم تقابلشون رو به هم گونه‌های در واقع افرادی که تو این موضوع کار می‌کنن البته تو محتوام گفتید که یافته‌ها و فراوردهای زیادی رو میشه از این خاندان ها و میراثی که نخ کردن یعنی تو راستی که داشتن و آموزهایی که نخ کرده میشه استفاده کرد که خب مثال هایی رو زدید که مثلا خاندان جفر چه ویژگی رو داشتن یا خاندان میسم چه ویژگی رو خب این پرونده تو این نشست قابل بسته شدن نیست فاید یه بود از در واقع بستر فراخی که در حوزه خاندان ها و نقش خاندان های شیئی وجود داره و در واقع همه کلیدواجه هایی بود که شایسته است تونش اصلای مستقل به اونها پرداخته بشه در پایان باز هم تشکر میکنم ظاهرا دوستانی که به مجازی ارتباط داشتن سوالی نداشتن قرار بود که یه سوالی داشتن منتقل بشه و تحت بشه از حضورشون را پیگیریشون تشکر میکنم همچنین از حضور سروران ارجمند و یه درخواست از جناب آقای دکتر داریم که یا رساعت نشست جور باشه که ما رو در تقابل با خدا قرار ندید <تصفحى> ما مردان روزای سخت هستیم ولی روزای راحت خودمون سخت نکنیم میشه و نیم از زودتر جوری نشست باشه که در تقابل با وقت اذان نباشه باز هم تشکر میکنم سلامتی اینو حد بفرماییم اليوم... <تصفيق> <تصفح>